سلام از مکان خدمت شما و دانشگان عزیز من شریفی هستم. به عنوان یکی قسمت از قسمت‌های پادکست واقعه من خوش آمدید. در این قسمت در خصوص داد ورز صحبت می‌کنیم. سوال می‌شود در مرحله اجرای حکم به ما گفتند که با داد ورز هماهنگ باشید، این شخص چه کسی است؟ داد ورز همان مأموري اجراست. این شخص زیر نظر مدير اجراء فعالیت می‌کند. یعنی اگر ما بخوایم مالی را تقویف بکنیم یا در واقع عملیاتی رو در مرحله اجرا انجام میدهیم. باید با داد ورد یا همان ممور اجرا هم انجام کنیم که در شرایط فعلی از قبل باید حتما وقت گرفته شود تا به درخواست شما رسیدگی بشه. پس اگر میگوییم با داد ورد هم انجام میدیم، یعنی منظور همان ممور اجراست که باید از طریق سایت اقدام به اخسربات بکنی تا اقدامی که باید در اجرای انجام شود با هماهنگی نامبرده مسئله توقف مال سرعت بگیرد.